آیا مش زاهر روشنا، به نام خداوند بخشاینده و بسیار مهربان الحمدلله الذي علا في توحيده ودنا بی پایان خداوند عالمیان راست توانای بی پایان در کمالات خیش هیچ شریکی ندارد گواهی میدهم اوست خدای چه همگان در برابر عظمت او سر فرود آورند و همه چیز در مقابل عزت او خار گردد خدایی که چون اراده کند همان شود بمیراند و زنده کند فقیر کند و غنی گرداند بخنداند و بگریاند بسی سپاسش گویم و پیوست سنایش نمایم چه در آسایش و چه در گرفتاری چه در سختی و چه در حال آرامش ایمان دارم به ذات بیپایان او، به فرشتگانش، به کتابهایش و به فرستادگانش. فرامینش را اطاعت کنم و بپسندم آنچه را او رزا دارند. ای مردم، همانا خداوند مرا سخت سفارش کرده تا آنچه درباره علی برمن فروداورده را ابلاغ کنم. و اگر چنین نکنم، گویی رسالتش را نرسنده ام. فرشته سه بار بر من نازل شد و از سوی خداوند مرا معمور ساخت تا در این گرد همایی به و بر همه شما اعلام کنم که علی ابن عبی طالب برادر من و وسیع من و جانشین من بر امتام و امام پس از من است. نسبت او با من، چنان نسبت هارون با موسی است جز آنکه دیگر پیامبری پس از من نیست او پس از خدا و فرستاده اش صاحب اختیار شماست چرا که خداوند فرموده صاحب اختیار شما خدا و فرستاده اش است و نیز چسانی که ایمان آورده و نماز به پا و در حال رکوع زکات دهند و این علی ابن ابی طالب است که نماز را به پا داشته و در حال رکوع زکات داده و در همه حال به یاد خداوند است ای مردم من از جبرئیل درخواست کردم تا از خدا بخواهد مرا از ابلاغ این مهم معاف کند زیرا از کمی متقیان و زیادی منافقان و افساد ملامت کنندگان و حیله مسخره کنندگان آگاهی دارم کسانی که حرفشان و درونشان یکی نیست ای مردم! ای مردم بدانید که خداوند او را برای شما صاحب اختیار و امام قرار داده و اطاعتش را بر همه شما یک تا پرستان واجب نموده است هر کس با او مخالفت کند ملعون است و هر کس تابع او باشد و او را تصدیق نماید مورد رحمت الهی است خداوند او را و هر کس را که از او اطاعت کند آمرزیده است. ای مردم، این آخرین بار است که در چنین اجتماعی بپامی نیستم. پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر پروردگارتان سر تسلیم فرود آورید. خداوند عزوجل صاحب اختیار شما و معبود شماست، و پس از خداوند فرستاده و پیامبرش و پس از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است پس از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات خواهید کرد ای مردم, ای مردم. بدانید که علی بر دیگران برتری دارد هیچ دانشی نیست مگر آنکه خداوند آن را در من آورده، و من نیز آن را به علی آموختم. ای مردم از علی روی بر مگردانید و سوی دیگر نروید از ولایت او سر باز نزنید اوست که به حق عمل کرده و شما را به سوی آن رهنمون میسازد. باطل را ناحق دانسته و از آن باز دارد و سرزنش سرزنش کنندگان او را از راه خدا باز نگرداند او نوخستین مردی است که به خدا و فرستاده اش ایمان آورد و نزد من به نماز ایستاد اوست که در جای من خوابید و بدین سان در راه فرستاده خدا فداکاری کرد او را بپذیرید که او گماشته شده خداوند است ای مردم، هر که ولایت او را انکار کند خداوند هرگز توبه اش را نپذیرد هر که با او به ستیز برخیزد، او را تا ابد به عذابی سخت و دردناک گرفتار سازد به خدا سوگند حقیقت قرآن را به شما نگوید و تفسیرش را برایتان آشکار نسازد جز این شخص که اکنون دست او را گرفته و بالا برم. ای مردم، بدانید، هرچه من صاحب اختیار اویم، از اکنون این علی است که, که صاحب اختیار اوست. او علی ابن عبی طالب برادر و جانشین من است و ولایت او از جانب خداوند عزوجل بر من فرود آمده است. ای مردم، قرآن صدل اکبر است، و علی و فرزندان پاکم از نسل او سقل اسقرند آن دو از یکدیگر دیگر جدا نگردند تا نزد حوز کوسر بر من وارد شود همگان بدانید که من خواسته خداوند را ادان مودم بدانید که من سخن خداوند را بر شما رساندم و همه آن را آشکارا شنیدید اکنون از جانب خداوند عزوجل گویم بدانید که امیر جز برادرم علی نیست و پس از من برای اهدی جز او روا نیست که خود را امیر المؤمنین خاند. بدانید که هر کس من صاحب اختیار اویم، این علی صاحب اختیار اوست. خداوندا خداوندا دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمندار دار هر که او را دشمن دارد. یاری کن هرکه او را یاری رساند و خار کن هرکه او را خار سازد پروردگارا تو خود گواه باش که من ابلاغ کردم آنچرا که فرمان دادی ای مردم خداوند دین شما را با امامت علی کامل گرداند پس هرکه از او و جانشینانش که از فرزندان من خواهند بود پیروی نکند؟ اعمالش تا روز رستاخیز از بین رفته و در آتشی همیشگی خواهد بود ای مردم پیامبرتان بهترین پیامبران و وصیتان بهترین وسیع و فرزندان او بهترین اوسیعه بدانید که با علی دشمنی نکند جز انسان شقی و با علی دوستی نکند جز انسان تقی و به او ایمان نیاورد جز مؤمن مخلص ای مردم بعد از من کسانی خواهند آمد که مردم را به آتش فرا خانند. برای آنها در روز رستاخیز یاوری نخواهد بود و خداوند و من از آنان بیزار هستیم آنان و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان. در پاس ترین جای دوزخ خواهند بود که چه جای بدی است؟ ای مردم, ای مردم! من امر خلافت را به عنوان امامت و وراست تا روز رستاخیز در دودمان خود به ودیعه حادم و رسانیدم آنچه مأمور به ابلاغش بودم تا حجت باشد بر حاضران و قائبان و بر همه کسانی که به دنیا آمده یا در آینده خواهند آمد پس از من دیری نپاید که امامت را به زور و ستم گیرند و چون پادشاهان عمل کنند همگان بدانید که لعنت و نفرین خداوند بر همه آنان باد بدانید که دوستان اهل بیت کسانی هستند که بهشت برای آنان است و بی حساب در آن روزی داده شوند بدانید که دشمنان اهل بیت کسانی اند که در شعله‌های آتش دوزخ افکند شوند ای مردم آگاه باشید آگاه باشید که آخرین پیشوایان مهدی قائم از ماست اوست که بر سایر کیش ها چیرگی یابد و از ستمکاران انتقام گیرد اوست یاری کننده دین خدا اوست برگزیده و زخیره خداوند اوست که هر دانش و فهم ژرفی را به عرص برده و پیشینیان به آمدنش بشارت دادهاند. اوست که حجت خداوند باقی ماند و جز او حجتی دگر نباشد هیچ حقی نیست مگر همراه او و هیچ نوری نیست مگر نزد او آگاه باشید کسی را توان چیرگی بر او نباشد و اوست ولی خدا بر روی زمین که حکم خدا را در میان مخلوقاتش پیاده سازد و امین او بر نهان و آشکار باشد ای مردم اکنون در پایان خطبه خیش شما را برای بیعت با او و پذیرش امامتش فرا می خانم. با من و سپس با علی دست بیعت دهید که من با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کرده است پس اکنون بدانید که من از جانب خداوند برای او از شما بیعت می گیرم خداوندا، خداوندا رحمت و آمرزش خیش را فرود آور بر هر کسی که گفتار مرا در این ابلاغ مهم پذیرفته و بدان ایمان آورد و خشم و غذب خیش را نثار انکار کنندگان و کافران گردان همانا ستایش سزاوار توست که پروردگار جهانیان و الحمدلله رب